حکایت با تایفه بزرگان به کشتی در نشسته بودم. زورقی پی ما غرق شد. دو برادر به گردابی در افتادند. یکی از بزرگان گفت ملاه را که بگیر این هردوان را که به هر یکی پنجاه دینار ردده هم. ملاه در آب افتاد و تا یکی را برهانید اندگر هلاک شد. گفتم بقیت عمرش نمانده بود، از این سبب در گرفتن اون تأخیر کرد و در آن دگر تعجیل ملاه بخندید و گفت، آنچه تو گفتی یقین است و دیگر میل خاطر به رهانیدن این بیشتر بود که وقتی در بیابانی مانده بودم و مرا بر شطوری نشنده. و از داستان دیگر تازیانه خوردم در طفلی گفتم صدق الله من عمل فل و من عمل الصالحان فل هی و من قصاء فعلیها تا توانی درون کس مخراش کم در اینجا خارها باشد کار درویش مستمند برار که تو را نیز کارها باشد